به نام خدا با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز داستان دختر عاقل پادشاه کار نیکو کردن از پر کردن است این مضمون روایت دختر عاقل پادشاه می باشد همانطور که در زیرنویس قصه نیز آمده است نظیر این افسانه را نظامی گنج دارد این روایت از قصه های نکته پرداز است و مضمون آن همینک نیز در میان مردم به صورت ضرب المثل به کار میرود کار نیکو کردن از پر کردن است که ضمن تشویق خواننده و شنونده به تمرین و ممارست برای انجام کار بهتر مدعیان خودبین را نیز از هوای نخوت و غرور به زمین کسب مهارت در پی تکرار عمل پایین می آورد راویان قصه ها شروع و پایان روایت خیش را به جمله های خاص می آرایند پایان بخش روایت دختر عاقل پادشاه چنین است هفت روز و هفت شب بسات جشن و عروسی گستردند من هم در آن مجلس سور خوردم و نوشیدم و سه سیب با خدا آوردم. یکی برای تو، یکی برای خودم، سومی هم برای عموسلته. و اما داستان پادشاهی بود، روزی از شکار برگشته بود دخترش رو صدا زد تخم مرغی روی سر دخترش گذاشت تیر رو در چله کمان قرار داد و تخم مرغ رو از روی سر دخترش با تیر زد و انداخت بعد از دخترش پرسید: خوب چطوره تیراندازیم خوبه؟ دختر گفت پدر خودت نناز که کار کار عادته پادشاه خیلی عصبانی شد و به وزیرش دستور داد که دختر رو ببره و بکشه وزیر دختر رو برد و در جنگلی رهاش کرد. بعد به نزد پادشاه اومد و گفت که قربان کشتمش. دختر تو اون جنگل رفت و رفت تا به مرد شبان یا چوپانی رسید. مرد شبان که فرزندی نداشت اون دختر رو به دختری خودش قبول کرد. صبح فردا دخترک مرواریدی رو از گی در آورد و به مرد شبان داد و گفتش که دیگه نمیخواد دنبال دامها بری این مروارید رو بفروش و چه که غذا و لباس لازم داریم باهاش بخر. روز بعد دخترک و شبان در حین گردشی که میکردن به یک کوهی رسیدن. پای اون کوه جای بسیار زیبایی بود. دخترک مروارید دیگه ای رو در آورد و به شبان داد و گفت برو و این قطع زمین رو از پادشاه بخر. شبان مروارید رو گرفت و به نزد پادشاه رفت. پادشاه وقتی فهمید که یک شبانی برای خرید یک قطعه زمین پای کوهش اومده گفت زمینو تصرف کن پول تو رو هم لازم ندارم. تون زمین؟ یک کاخ چهل اشکوبه ای یعنی چهل طبقه ای ساخت وقتی که وارد کاخ شد دخترک به شبان گفت پدر به بازار برو و گاوی رو که تازه زاییده و گوسالش هم نر باشه برام بخر شبان رفت و گاو و گوساله رو برا دختر خرید و برگشت دختر هر روز سه بار گوساله رو از اشکوب یا طبقه 40 کاخ به پایین پیش گاو می‌آورد، گوساله شیر می‌خورد و باز گوساله رو به اشکوب یا طبقه 40م برمیگردوند. 5 سال کار دختر همین بود. تو این مدت گوساله گاو بزرگی شده بود. یه روزی پادشاه تو جنگل سرگرم شکار بود. دخترک شبان رو فرستاد تا پادشاه رو برای شام دعوت کنه. پادشاه دعوت شبان رو قبول کرد و غروب به خونشون رفت. دخترک اسباب و لوازم پذیرایی رو آماده کرد. بعد گاو نر رو روی دست گرفت و از پله ها پایین رفت و بعد از اینکه گاو گاوه ماده رو دوشید باز گاوه نر رو روی دست گرفت و از پله ها بالا اومد پادشاه خیلی تعجب کرد گفت شبان اون که من میبینم مثل یه معجزه است درباره دخترت برام حرف بزن شبان گفت قبله عالم موجزهی در کار نیست کار کار عادته پادشاه تا این حرف شنید به یاد گفته دخترش افتاد و گریه کرد. دختره علت گریه پادشاه رو ازش پرسید. پادشاه گفت دختر بی گناهم نابود کردم. دختر ازش خواست تا کسی که دخترش رو کشته رو احزار کنه. پادشاه وزیر رو احزار کرد و ازش پرسید آیا اون روز دخترش رو کشته یا نه؟ وزیر امان خواست و حقیقت رو گفت. دختر چادر رو از سرش برداشت. پادشاه دخترش رو شناخت و غرق شادی شد. و گفت حق با تو بود. معلوم شد که تو از من آقل تری. دخترک رو به عقد وزیر در آوردن و هفت روز و هفت شب جشن و عروسی بر پا بود. دختر عاقل پادشاه افسانه های کردی صفحه چهل و 47 میم بی رودنکو مترجم کریم کشاورز انتشارات آگاه چاپ سوم سال 1356 شنوندگان عزیزم. امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید و منو در داستانهای بعدی هم همراهی کنید همه شما رو به خدای مهربون می سپرم. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب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 با اصفهای تندرو و جادویی به سرزمین های ناشناخته قصههای های دیو و غول و پری رشادت های قهرمان های ها. همه و همه و همه, همه, و همه در کاناده تریگرامی هزار افسان، داستان های صوتی ادساین مهران دوستی